در قبرستان ترسها و بیمها تحقق یافتند و لیزا ناگهان بیماری شدید شد به اندازه شدید تر شد که شبش ولچانینوف و کلاودیا پترونا دست از او شسته بودند وقتی که صبح شد ولچانینوف هوش و حواس بیمار را هرچند که در آتش تب می سوخت کاملا به جای خود بعد هاول چنینوف اقرار میکرد که بیمار به او لبخند زده بود و حتی دست سوزانش را به طرف او دراز کرده بود. آیا این مطلب حقیقت داشت یا او فقط برای اینکه خود را تسلا بخشد آن را خیال کرده بود؟ وقتی این را نداشت که در این موضوع بیندی شد. زیرا طرف شب دیگر بیمار هوش و حواس نداشت و این حالت در تمام مدت بیماریش ادامه یاد. در دهمین روز ورودش به خانه پوگورلسفها مرد. برای ورچانینوف دوره حزن‌انگیزی بود و پوگورلسفها می‌ترسیدند به سلامتیش لطمه‌ای وارد بیاید. او قسمت بزرگی از این روزهای فرسا را نزد آنها گذرانید. ساعت‌های متوالی تنها در گوشه‌ای می‌نشست و به نظر می‌آمد که به چیزی نمی‌اندیشد. گاهی دیا پترونا برای منصرف کردنش به او نزدیک میشد. اما او به زحمت جوابش را میداد و اغلب راستی برایش دشوار بود که با او صحبت کند. حتی کلاف دیا پرونا منتظر نبود که این قضیت ها این اندازه در ولچینوف تاثیر بکند. بچه ها بیشتر او را مشغول میکردند. گاهی به آنها می خندید. اما تقریبا هر ساعت بلند میشد. و با سرپنجه پنج میرفت نظری به بیمار میافکند. گاهی به نظرش میآمد که بیمار او را به جا می آورد. او هم مانند دیگران برای نجاتی یافتن بیمار امیدی نداشت اما از اتاقی که لیزا در آن میمد دور نمیشد، اغلب در اتاق مجاور به سر می برد. از اینها گذشته در تمام این دوره دوبار فعالیت بزرگی از خود بروز داد. ناگهان بلند میشد به پترزبورگ نزد پزشک ها می رفت مشهورترین آنها را برای مشورت دور هم جمع میکرد. دومین و آخرین مشورت پزشکها شب قبل از مرگ لیزا انجام گرفت سه روز قبل کلافدیا پتروفنا با ولچانینوف از لزوم پیدا کردن ترساتسکی هر کجا که ممکن باشد صحبت کرد اگر بدبختی فرا برسد حتی نمیتوان بی او لیزا را به خاک سپرد ولچانینوف تند و نامفهوم گفت که به او خواهد نوشت. آنگاه پگارلت پیر اظهار کرد که به وسیله پلیس در صدد جستجوی او برخواهد آمد. ویلچانینوف بالاخره تصمیم گرفت که کاغذ مختصری بنویسد و آن را به هتل پوکروفسکی ببرد. بنابرای عادت پاول پاولویچ آنجا نبود و او کاغذ را به ماریاسیسیو ناسه پرد. و لیزا در یک عصر قشنگ تابستان، هنگام غروب خورشید مرد فقط آن وقت بود که ورچنینوف به خود آمد لیزا را زینت داده پیراهن سفیدی به او پوشانیده بود پیراهن عید یکی از دخترهای کلادیا پترونا و او را روی میزی در وسط سالن خوابانیده بودند در دستهای به هم پیوستهش گل گذاشته بودند ورچنینوف به کلادیا پترونا نزدیک شد و با چشمانی درخشان به او اظهار کرد که الان فوراً می تا قاتل را بیاورد. به او توصیه کردند که تا فردا صبر کند ولی نپذیرفت و فوراً عظیمت کرد. میدانست کجا پاول پاولویچ را بیابد؟ تنها برای مشورت و پزشکانه بود که اغلب پترزبورگ می آمد. گاهی هنگام بیماری لیزا به نظرش می آمد که اگر می توانست پدر را به بالین طفل بیمار ببرد با شنیدن صدای او لیزا زندگی را از سر خواهد گرفت آنگاه مانند دیوانهای به جستجویش برمیخواست پاول پاولوویچ همانطور در آن اتاقهای مبلس سکونت داشت اما مراجعه کردن به آنجا بیفایده بود ماریا سیسیونا به او اطلاع میداد اکنون سه روز است که شبها بیرون می‌خوابد و هیچ برنگشته است و اگر اتفاقا بیاید مست است یک ساعت بیشتر نمی‌ماند و باز پی کار خود می‌رود. در سرازیری وحشتناکی دارد سیر کند در بین دیگران خدمتکار هتل پوکروفسکی به او اطلاعات داد که پاول پاولویچ ها پیش با بعضی دختران چشمانداز وزنسانسکی رفت و آمد میکرده. ولچانینوف آنها را فورا پیدا کرد و چون پاول پاولویچ پول خوبی به آنها داده بود فورا مشتری خودشان را مخصوصاً کلاه او را که نوار سیاه داشت به یاد آوردند و او را ناسزا گفت مسلمان برای اینکه دیگر نزد آنها نمی آمد. یکی از دخترها کانیا متعهد شد که هر لحظه بخواهد می پاول پاولویچ را پیدا کند. زیرا حالا دیگر اصلا از ماشکا پروستاکوها دور نمی و این مرد به اندازه پول دارد که تمام شدنی نیست. و این ماشکا پروستاکوها نیست بلکه پروخ یعنی آدم پست. در بیمارستان معالجهش کردن و اگر می‌خواستند می‌توانستند فوراً او را به سیبری بفرستند. برای این کار اگر یک کلمه اظهار میکردن کفایت میکرد. با وجود این در این روز جستجوی کانیا به جایی نرسید. اما آن دختر قول داد یک بار دیگر برای یافتنش بکوشد. اکنون همه امیدواری های ولچانی به این دختر بود. ساعت ده که به شهر رسید فوراً آن دختر را طلبید. و پولی را که باید برای گرفتن اجازه خروج و غیبت او بپردازد پردازد پرداخت و با او به جستجو برآمد هنوز خودش هم نمیدانست چه می کند. پاول پاولویچ را میکشد یا فقط او را برای این جستجو می کند که مرگ دخترش را به او اطلاع دهد و برای به خاکس پردن از او یاری بطلبد. اولین کوشش بینتیجه ماند با خبر شد که سه روز قبل مشکااپ رخ و پاول پاولویچ زد و خرد کرده بود و صندوقداری با ای سر پاول پاولویچ را شکافته بود خلاصه باید زمان درازی او را جستجو کرد و نزدیک ساعت دو صبح بود که ولچانینوف ناگهان هنگامی که از یکی از اماکنی که به او نشان داده بودند بیرون میآمد دفعتا به پاول پاولویچ برخورد پاول پاولویچ کاملا مست بود و دو زن او را به طرف این ساختمان میکشیدند یکی از آنها زیر بازویش را گرفته بود و مرد جسور سرخوشی که بیشک مدعی او بود آنها را با عدو و اتوار تعقیب می کرد. آن مرد پاول پاولویچ را تهدید می کرد و با داد و فریاد دشنامهای ناهنجاری نصارش می کرد. در بین دشنامهایش فریاد می کشید که این مرد از او بهره می برد و زندگیش را تباه می سازد. به نظر می آمد صحبت بر سر مقداری پول است. زنها بسیار وحشت زده بودند و عجله داشتند. پاول پاولویچ ولچانینوف را شناخت. و با آغوش باز خود را به طرف او انداخت و مثل اینکه گلویش را میبرند فریاد کشید هی برادر جان از من دفاع کن در برابر شانه پهن و هیکل قوی ولچنینوف مدعی به یک بر هم زدن ناپدید شد پاول پاولویچ مزفرانه مشتش را به او حواله کرد و فریاد شدیدی به علامت پیروزی برکشید آن ولشاننیوف با خشم جنون مانندی شانههایش را چسبید و به اینکه خودش بفهمد برای چه انقدر شدید او را تکان داد که دندانهایش به هم خوردند. پاول پاولویچ فوراً فریادش را برید و با وحشت بسیار نگاه منگ مستانه خود را به روی میر غذ خیره ساخت. ولچنوف که شاید هنوز نمیدانست چه به سر او میآورد او را به زانو درآورد و با خشونت او را کنار پیاده نشانید و گفت: لیزا مور. پاول پاولویچ که یکی از ها او را نگاه داشته و کنار پیاده رو نشسته بود، ورچنینوف را از نظر دور نمی نمی‌داشت. بالاخره فهمید، و ناگهان صورتش در هم شد و با صدای عجیبی زمزمه کرد: "مرد." آیا خنده منحوس مستانه طولانیاش را شروع کرده بود یا فقط صورتش متشنج شده بود؟ ورچنینوف نتوانست این مطلب را تشخیص دهد. اما یک لحظه بعد، پاول پاولویچ دست راستش را که می‌لرزید، با قوت بلند کرد و خواست علامت صلیب رسم کند. با وجود این، علامت صلیب تمام نشده بود که دست لرزانش فرو افتاد. چند دقیقه گذشت. بعد به آهستگی بلند شد، خود را به آن زناویخت و به او تکیه کرد و با سستی فوق‌الاده، مثل اینکه ورچانینوف وجود ندارد، به راه خود ادامه داد. اما ولچانی دوباره شانه را چسبید با خشمی که او را خفه می کرد گفت میفهمی؟ ای دیف! ای شرابخار، بی وجود تو به خاک سپردنش مهان خواهد بود پاول پاولویچ سرش را برگردانید و او را نگاه کرد با لحنی احمقانه و نامفهوم گفت آن سطفان توبخانه را به خاطر میآورید آورید ولچانی دردناکی خورد و فریاد کشید چی؟ خیلی خوب، گوش کن، همان او پدرش است، برای به خاک پردن او را جستجو کن ونچانینوف با دست پاچگی فریاد کرد دروغ میگویی، از روی شرارت و بدجنسی میگویی، میدانستم که تو به من این طوروانه مود میکنی خود به خود مشتمهی به خود را بالای سر پاول پاولویچ بلند کرد باز یک لحظه گذشت و شاید با یک ضرب میخواست او را بکشد زنها فریاد گوش خراشی کشیدند و به عقب پریدند. اما پاول پاولویچ از جا نجمبید بغز و خشم حیوانی صورتش را در هم میفشرد آیا به اصطلاحات زبان روسیه خودمان آشنا هستی؟ و مثل اینکه ناگهان مستیاش زایل شده باشد با صدای بسیار محکمی زننده ترین ناسزاها را بر زبان جاری کرد خب این مال تو بعد با قوت خود را از دست ورچانیوف رها کرد سکندری خورد و نزدیک بود بیفتد. زنها زیر بازوهایش را گرفتند و تقریباً در حالی که او را میکشیدند با داد و فریاد فرار کردند ولچانیوف آنها را دنبال نکرد فردا نزدیک که بعد از ظهر خدمتکار پیری با لباس رسمی بسیار آراسته به خانه پاگورل سفها آمد و پاکتی از طرف پاول پاولویچ ترسوتسکی به کلاودیا پتروف علاوه بر کاغذهای لازم برای به خاک سپردن لیزا، یک نامه و 300 روبل در پاکت بود. نامه بسیار کوتاه بود و فوق‌الاده مؤدبانه و صحیح نوشته شده بود. پاول پاولویچ از خانم محترم کلاودیا پتروفنا از اینکه شفقت این نسبت به دختر جوانی نشان داده بود که تنها خدا می تواند به او پاداش بدهد، اظهار تشکر می کند. به طور مبهم ذکر می کرد که کسالت که نامعینی به او اجازه نداده شخصا در مراسم تدفین دختر بدبخت بسیار عزیزش شرکت جوید و همه امیدواریهایش به روح نیکوکار فرشته مانند آن خانم محترم است. توضیح میداد که 300 روبل برای مخارج تدفین و به طور کلی برای مخارج مدت بیماری فرستاده شده است. اگر چیزی باقی ماند با کمال احترام و فروتنی درخواست میکرد که آن را برای آرامش ابدی روح مرحوم لیزا به مصرف دعا و نماز برسانند. پیشخدمتی که نامه را آورده بود نتوانست بیش از این چیزی بگوید. حتی از بعضی حرفهایش فهمیده می‌شد که به واسطه خواهش‌ها و اصرارهای پاول پاولویچ شخصا قبول کرده است که نامه را به خانم محترم برساند. پاگورلسف تقریباً از این کلمات مخارج دوره بیماری رنجیده خاطر شد و قصد کرد که پنجاه روبل بیشتر بر ندارد. زیرا نمی توان از پدری برای پرداخت خرج تخفیف بده چشچلوگیری کرد. و فوراً باقی آن مبلغ را به آقای ترساتسکی برگرداند. اما کلاف دیاپتروف تصمیم گرفت که قبض رسیده 250 روبل را از کلیسای قبرستان بگیرد و برایش بفرستد تا نشان بدهد که این پول برای آمرزش ابدی روح مرحوم الیزابت به مصرف رسیده است. بعد از تخفیف رسید به ولچانینوف تحویل داده شد که او فوراً آن را با پست به آدرس پاول پاولویچ فرستاد. بعد از تطفین ولچانینوف از ویلا ناپدید شد. مدت دو هفته تنها بی هدف غرق در افکار خود در شهر سرگردان میگشت و به آبرین تنه میزد. گاهی تمام روز روی نیم تختش دراز میکشید و حتی از آدی ترین چیزها قفلت می فرزید. گوریلف چندین بار دنبالش فرستادند به آنها وعده میداد که خواهد آمد اما فورا فراموش میکرد کلودیا پتروونا خودش به خانه او آمد اما او را نیافت همین موضوع درباره وکیلش که برای او خبرهای مهمی داشت اتفاق افتاد به قدری با مهارت دعوا را اداره کرده بود که طرف مقابل پذیرفت که با هم کنار بیایند و زمانت کرد که یک قسمت بزرگ از ارسی را که مورد نزاع بود به او واگذار کند فقط رضایت ورچانیوف باقی مانده بود ملأخره وقتی که او را در خانهاش یافت از بیحالی و خونسردی کامل که ورچانیوف در پذیرایی از او نشان داد این ورچانیوف که سابقا اینقدر ناراحت بود بسیار متعجب شد در روزهای گرم ماه جویه بود اما ورچانیوف حتی زمان را فراموش کرده بود. درد و رنجش مانند دومل پختهای روحش را جریه دار می کرد و بیش از پیش فکر روشناش را فرا می گرفت. مخصوصاً این فکر که لیزا فرصت نیافته بود او را بشناسد و به این که بداند چگونه او را از روی درد پرستش می کرده مرده است. او را آزار می داد. تنها هدف زندگیش که دفعتا با پرتو تابناکی در برابرش پدیدار شده بود ناگهان در ظلمت عبدی فرو رفته بود. این هدف که اکنون دائما به آن می این بود که لیزا در هر دقیقه و در مدت همه زندگیش محبت او را حس کند گاهی با جوش و خروشی تیر اوتار فکر می کرد هیچ کس هدفی بلند مرتبه تر از این ندارد و نمی تواند داشته باشند حتی اگر هدفهای دیگری وجود داشته باشند هیچ کدام نمی توانند مقدستر از این باشند می این محبت من تمام زندگی بیهوده و پست ام را پاک کرده بود و آن را باز خریده بود. به جای اینکه فقط به خودم که در همه عمر ولگردی و شهوت رانی ام بیاندیشم، سبب شده بود که موجود زیبا و مقدسی را نوازش کنم و به علت این موجود همه گناهانم بخشوده شده بود. خودم نیز خودم را کاملا بخشوده بودم. تمام این افکار روشن و آشکاری که به مغزش حجوم می‌آورد، با خاطری طفل مرده همراه بود. خاطره درخشانی که همیشه نزدیک بود و روحش را تیره می سعی می جزئیات جز ایات چهره کوچک رنگ پریده او را در نظر مجسم کند. هر یک از خطوط سیمایش را به خاطر می‌آورد. او را در تابوتش، غرق در گل یا او را بیهست و شعور که در آتش تب می زود. و چشمان درشتش را به یک جا میدوخت به یاد می آورد خدا میداند به چه علت از تمام مدت بیماریش ناگهان به یاد این افتاد که یکی از انگشت های کوچکش سیاه شده بود این را همان وقت فهمیده بود که لیزا را روی میز خوابانیده بودند این موضوع را بی اندازه متاثر کرده بود و چنان دلش به حال این انگشت کوچک بیچاره سوخته بود که او که تا آن هنگام خون سرد به نظر می آمد تصمیم گرفت فورا پابل پاولویچ را بیابد و او را بکاشد آیا علتش قرور لگدمال شده بود که قلب کوچک بیچاره این تفر را تا دم مرگ شکنج داده بود؟ آیا علتش در و هایی بود که مدت سه ماه این پدر به او وارد آورده بود؟ این پدری که محبتش ناگهان به کینه بدر شده بود و با یک کلمه توهی قلب قلب را جریه دار کرده بود و از وحشتش به او اعتنان نکرده بود و بالاخره او را به دست بیگانگان سپرده بود دائما همه اینها را به صورتهای گوناگون و بیشمار به خاطر می‌آورد. ناگهان این جمله ترسودسکی مست را به یاد آورد آیا می‌دانید فقط لیزا برایم چه ارزشی دارد؟ و حس کرد که این فریاد او دیگر ادا و شکلک نبود بلکه با صداقت هدا شده بود و از سر محبت برمیخواست اما این دیو چطور می‌توانست به این اندازه نسبت به طفلی که او را تا این حد پرستش می‌کرد خشن و بیره هم باشد آیا این رفتار قابل قبول است اما هر بار مثل اینکه می‌خواست در برابر این فکر از خود دفاع کند فوراً از آن در میگذشت. در این مشکل چیز وحشتناک غیرقابل تحمل و حل نشده ای وجود داشت. یک روز تقریباً بی اراده به قبرستانی که لیزا در آن به خاک سپرده شده بود رفت. بعد از تدفین، یک بار هم به آنجا نرفته بود. به نظرش می آمد که این کار برایش بسیار دردناک خواهد بود و جرأت نمی‌کرد به آنجا برود. اما چیز عجیبی بود. هنگامی که برای بوسیدن قبر روی آن خم شده بود، ناگهان حس کرد که سبک شده است شامگاه روشنی بود و خورشید داشت غروب می کرد. اطراف قبرها علفهای سبز بوهی رویده بود در آن نزدیکی در یک بوته نسترن زنبور اصل زمزمه می کرد. نیمی از گلها و تاج گلهایی که بچه های کلاودیا پترونا پس از تدفین روی قبر لیزا گذاشته بودند بر روی زمین ریخته بود برای اولین بار پس از زمانی دراز نسیم امیدی قلبش را تر و تازه ساخت. از آرامش قبرستان متاثر شده بود و در حالی که به آسمان روشن و صاف نگاه می کرد، اندیشید. چه لطافتی، ایمان پاک و آرامی در قلبش نفوذ می کرد و روحش را فرامی گرفت. با خود گفت، این موهبت از لیزا است، این اوست که دارد با من حرف میزند. وقتی خواست برگردد شب فرار رسیده بود. کنار جاده نزدیک در قبرستان یک خانه کوچک پست چوبی بود که در آن شراب می نوشیدند و به جای میخانه کوچکی به کار میرفت. از پنجره های باز مشتریها که پشت میز نشسته بودند دیده میشدند. ناگهان به نظرش آمد که یکی از آنها که نزدیک پنجره نشسته بود پاول پاولویچ است. نیز به نظرش آمد که او هم وی را و با دقت ور اندازش می کرد راه خود را پیش گرفت اما به زودی احساس کرد که کسی سعی دارد به او برسد راستی هم پاول پاولویچ بود که دنبال او میدوید احتمال داشت که حالت آرام صورت ویلچانینوف او را جلب کرده و به او جرأت داده بود وقتی که به او رسید با شرمندگی لبخندی زد اما این دیگر لبخند مستانه سابقش نبود و به هیچ وجه مست به نظر نمی آمد. گفت؟ سلام ولچانی جواب داد سلام